جلسه بیسکو از سلام و سلام آلاتی دیرانه

که در فصول مده بود در رابطه با یک که ر تجری مصادقه با مسیت بشه با تداخل پیدا بکن و بحث که مصنف داره در رابطه با حکم این ا ن موضوعش با اینکه موضوعش هم محل بحث و است که عبارت باشد اینکه آیا تجری با مسیت واقعی جمع میشه یا جمع نمیشه یقینا جمع نمیشه

یعنی با فرض هر کدومش دیگری منطقیه تجربیه به مواردی میگن که ما به واقع نرسیدیم و مخالفت با واقع نکردیم و معصیت به مقاردی اطلاق میشه که مخالفت با واقع شده باشه و چطور میشه انسان تصورتونه موردی رو که هم تجربی باشه هم معصیت واقعی باشه این اصلا قابل نیست نیست. مراد مرادشون چی بوده؟

معلوم نیست محصیت واقعیه به وجود واقعیش که برگردن ما نیومده تقاب نداره. به وجود ظاهری شمه به ما نرسیده چون مفتوض که از موارد تجریه ماه علم پیدا کردیم به چیزی و اقدام کردیم به این محصیت و تجربی و مخالف با واقع در اومد در واقع حرامی از نداریم. ندادیم حالا اجتماع تجربی با محصیت واقعی به چه معناست

معنای محسلی نداره واقعا چون موضوعش از زمان و بلا او که موضوعش هم محقق باشه حکمش تدا قلعه نیست در اصطلاح کنم کنم خالت احرام می کنن که توشن نه که مثالا می کنم منصورت اون

تو تقریبا خب ببینید و با گناه که واقع انجام میشه آقا تجربهش تو شد، شده. نیست دیگه اون چیزی که اقامت داره اما تمرد و مخالفت دیگه تو چیز که یه چیزه.

محصیت نیست, نیست. وقتی که واقعا حرام بوده با میدونه به ما واصل نشده چیزی که واصل نشده برای حرام واقعی حساب بشه احکام به وجودات واسلشون برای ما منسلن نه به وجود واقعی خودشون در لوح محفوظ چی بوده بوده اون که برای ما اقاب نداره ترجزی مصادف بشه با محصیت واقعی موضوعش اصلا قابل تصور نیست

نمیشه تصور کرد. نه. هم تجربی باشه هم در واقع برسه به یه حرام واقعی نشدنیه حرام دوام اونو خب خیلی کردم من گفتم علم پیدا کردم به خمریت اقدام کردم و سر از خمریت در نیاورد، در سر از قصبیت در آورده اون توجیه توجیه که صاحبشم رازی نیست برای چی توجیه؟ همون قصبیت هم حرام نیست بر من

من نمیدونستم که من چیزی که بهش علم داشتم همریت بوده غصبیت برای من معلوم نبوده فرماتی نداره ازا هیچ قابل نه, نه, نه, نه توجیه نکنیم طور خدا برای چی تواجیه کنیم؟ قابل جمع نیست تجربی و مسیحات واقعی کجا جمع میشه؟ معنا نداره، مفهوم نداره قابل توجیه هم نیست مگر یک احتمالات بعیده یه احتمالات بعیده بدیم

که این تجربیه ظاهری من که فوق میگفتن می اشکالی نداره سر از یک معصیت واقعی در آورد من باعث شد سر از یک قفلی در آورد یعنی منجر سبب تولیدی شد ویلا جمع نمیشه یعنی این مقدمه شد برای اینکه زید امرو بکشی. اگر اینطور بگیر ویلا قابل توجیه نیست تجری با معصیت واقعی جمع نمیشه

و اللهی از هم قاعد بشیم به اینکه که احکام با وجود وجودات بر برمامونت جدن چه علم داشته باشیم چه نداشته باشیم اونم تکریف به محاله به مالای به غیر مقدور نمیشین حرفها رو بزنیم به که بگیم ساعت خصول پسامان این کرد. این نسبت به موضوعش نسبت به حکمش هم قاعده به تداخل اقاف شده

که ابا طالب میخونه که هر کدومش از این دو سبب مسببی میخواد تعدد اسباب مقتضی تعدد مسببات منتهایشون در خارج یک فعل انجام گرفته اینا تداخل میکنن و یک واقع میشه این رو مصنف نپذیرفت بل ام یعلما من محذابا بهواذ الکلام از معگون تجربی انوانا و سببا مستقلا قابل لقاح

کما ون مفروض به مساعد کلامی و رسولیگه لا وجهل تداخل این وریده به تداخل وحدت و لعباب اگه مراد وحدت و لعباب باشه معنی نداره به نهو ترزیحون بلا مراجه به تعدد علت مختصی تعدد معدوله و قول به وحدت و با تعدد علت محسنی نداره

در این موارد این اقاب یا بر احد الانوانین اینه به اینهی بر خصوص تجربیر یا بر خصوص مذکر واقعیه که ترجیل بلا کنجر بیشنید بر دو عنوان باشید بله؟ که دو سبب دو تا مسبب میدونید اون دیگه همه چیز به هم میدونید دیگه

تعداد سبب مختصی تعداد مسببه <تصفيق> حالا الان همه مباحث اصولی همه مباحث اصولی در نزد همه اعنو مبتنی بر اینه که قوانین عبدیه حتی در اعتباریات هم راه داره ما مبانین اونها رو که نمیتونیم نادیده بگیریم مبناه کنینه که تعدد علت مقتضی تعداد معلومه

مبناشن اینه میگن اگه این مبنا رو بگیریم همه چیز به هم میریزه تنها مخالف در مسئله الامه تباتبایی طبع قائل شده به اینکه اعتباریات خاضع قوانین اقر نیست کاری بههم نداره در اعتباریات دور و تسلسل و خلف لازم نمیاد در اصول فلسفه و روشالیس چند نفر مراجعه کرد دو نفر یه

چار، چهار, چهار نفر مراجعه کرده بقیه مراجعه نکردن بخاطر اینکه اهمیت نداره اعتباریات رو گفتیم به یک بیان اوفایی اومده مطرح کرده یک نظریه خاص شاخص و خیلی مفید. که نگره آقا این حرفایی که شما میزنید بر خلاف مشغوله خلاف مشهور خلاف مشغول نیست حرف خیلی سنجیده و مفید در اون.

حصول فلسفه مبذر شده فارسی هم هست با دقت بخونیم اونها قائلن به اینکه یعنی مشروع که اعتباریات با تکبینیات هیچ فرقی نداره قوانین عقلی بر هر دو حاکمه ولی علامه میگه نه بین اعتباریات و متعصلات باید فرق بازه وزا اگر ما بگیم این عقاب واحد بر احد الانوانه

خب ترجیح بلا مردده یعنی بر یکی از این دوتا مشخصن یا بر تجربیه یا بر معصیت مشخص بکنیم ترجیح بلا بگیم نه بر یکی از این دوتا مرددن خب فرد مردد از نظر فلسفی نه وجود داره نماهیت. چه یه مردد وجود نداره اگه قائل بشیم به اینکه بر هر دو بر خلاق مفید

یک اقاب بر هر دو انمان این بر خلاف چون محفوظ ما اینه که هر از این دوتا علت تامه استحقاق اقاب هم چطور میشه شما بیایی بگی یک اقاب با بشه بر دو علت لا وجل تداغل این او به این وقت تول اقاب به این یعنی وقت از اقاب ترجیه بلا مرجه چون یا بر تجریه یا بر معصیت هر کدومش باش ترجیح بلا مرجه.

و سیدی و فقر وایعین بر خلاف این وحدت اقاب یک لقایتی هر ساله در بعضی از موارد درخاشیه دک شده جزء مفت نمو سندف نیست و سیدی و فقر وایعین نعلق راضی اسمن و علق داخل فیهه اسمین دوتا تایقاب داریم بر یک کار دو اقاب. و این قریده به تدا قول اقابون زائد کم من او کیفن علا

اقاب معد تجربی بگیم قیل از اقاب معد تجربی اقاب زایدم داره حالا یا خود اقاب رو کم من زیادش میکنن یا که امتیدشو بالا میبرن که در شن علما باشه به حاضر لیست تداخلن این تداخل نیست لعنه کل فعل نجتمع پیه عنوانان من القبه یزید و اقابه کم من علاماتان پیه

این نسبت به مطالبی که سال پسود داره به اینا رفت بشیم <تصفيق> یه بخشی بنابود در رابطه با اقاب و تدافل اقاب تو چهار تفری نوشتم که آبا بخونم وقت کلاس گرفته نشه که اقاب بردسه قسم اقاب اعتباری داریم اقاب تسبیبی داریم اقاب تکبینی و داریم و اینها برای مطالعات آزاد باشی وقتی کلاس گرفته نشه

اگه مون بعدا جواب میده نسبت تداخل اقاب که از نظر یه بحث ماهوی داره که اشاره کردم از قلعه این که آیا عقب درست میکنه استحقاق اقاب رو اندم مخالفت العب للمولا اقلعا سم میکنه استحقاق اقاب رو درست کنیم یا نمیتونه کن؟ استحقاق اقاب رو من نوشتم نمیتونه

به خاطر که تنها چیزی که عقل انسان درک میکنه این که این فعل شایسته صدور از این عبد نبود هاز الفیلم مالا برای یعنی بقیه صدور رو من العبد تجاه المولا چیزی که عقل درک میکنه اینه استحقاق باید درد میشه یا نمیشه دلیل عقلی نداری

دلیل از سیره اقلایی هم نمیتونیم اقام بکنیم به خاطر این استحقاق اقام سیره اقلاییه باشه یرزم که به خاطر تشرفی و حفظ نظام اینها باشه و نسبت به عذاب اینها اصلا مفهند لذا بحث میشه که ملاکی در اقام اغلاق اقلایی چیه بحثش عقلیه یا اقلاییه

و این بحثش برمی گرده به همون مطلبی که قبلن گفته بودیم که آیا اقاب ای شیعه از معصیته یا یک چیز این ها؟ بعد به بعضی از کتاب ها مادرست دادمی نران مراجعه که شرح جمل علم و عمد سید مختصار از اقتصاد فرموم شیعه تورسی در علم کلامه از مسئله محفظه هندی، از لبان و للاییه خالف فاضل سیوری مراجعه کنیدی آدرستش هم نوشتم

که مطالب در نابطه با تداخل نقاب استحباقی باب چی می و تحقیل مختزای تحقیل در نهایت هم طبق نظر خود مصنف قبل از اینکه وارد به روایات بشه از نظر مقام سبود مقام سبود و مقام عقل رو خواست بگه قبل از رسیدن به مقام اثبات و مقام روایات تو روایاتی هم در باب تجردی داریم

و تحقیق نهولا لا او به تجربی الوسفی بین مواردی تجربی یا تجربی ووسفی ذات من تجربی کرده یه صفت نفسانی لا فرقفی قبه تجربی ووسفی بین مواردی چه مصادف بشه چه مصادف نشه تجربی به معنای صفت نفسانی قبیه بلا شک و از احکام عقل نظری اضافه میشه

بدون شک به وجدانیه قبهش نفسانی الان یک صفت ذاتیه وقتی اینطور باشه ذاتی میشه به احکام اقل نظری ذاتیه اون ذاتیات رو درک میکن. نه اعتباری این نسبت به قبه تجربی وصفی از تجربی یا وصفی یا فعلی در خارجه

یا قصدیه قصد دست تجلی انسان بکنه این نسبت به وزفیش قائل به قبله حالا یا با حرفهای قبلش میسازه یا نمیسازه نهایت نتیجه که میخواد در مقام ثبوت و عقل بگیره اینه مقتصد تحقیقم نمولا فرقفی خوبه تجربل وزفی به عنوان صفتی از صفات انسان به این مواردهی ای که مصادف باشه چه مصادف نباشه

چه در ضمن شما واجب تعبدی توسلی و امثالین انجام بدید چه نه معصیت واقعی انجام بدید همش قویه مسئله هم. دوم و اندال متجربی لا اشکالت استفقاقی از زمال اقلائی منجهت انکشاف خوبصباتنهی و سوء سریدتهی و جرعتهی علام و منان متجربی هم نسبت به اینکه

کشف شد از خبز باطنش و سوه سریله و جرعتش بر مولا همی که همین جرعت بفت رو داره میتونی بر این مولا اقدام کنه اینم با نسبت به این مستحق زم و ولی ولی نسبت به فعلی که واقع شده استحقاق زم هم حتی نداره و اما استحقاق العبد للذم

من نهی صرف فعل المحقق الخارجی المتجد رابه مثل این آب خوردن ففیه اشکال آیا یا مستحق میشه نسبت به این آب خوردن یا مستحق نمیشه میگه اشکال ولو در جواب از استدلال مشهور قبلا گفت که نداره یعنی مستحق زم نیست جزمه بین ادمه

بی مقام الاجابه از استدلال مشروع. در اونجا گفت نداره استحقاق زم نداره حال کی مده شبه کرده که چی اشکال چی اشکال وضیح اشکال چی اخاتین که آیا تجری صفت هم فعل تجری به چی میگن تجری یا صفت یا فعل اختلاف عالماتی فیزار ظاهر کلمات مصنف

اینه که فعلی از افعال و فعل بدی در خارج محقق نشده ولی بعضی میگن نه تجربی صفت نفسانیه از اون خارجی نیست جز افعال جوانهیه نه دوارهی لذا چون اختلاف در اینکه تجربی کدومشه یا اون صفت نفسانیه یا اون فید خارجیه کدومشه بگیم تجربیه چون اختلافیه فرموده بیهشکال منحیسه

این تجرین سهپتون من سفات نفس از اختیاریه او فعلون من افال انسان از اختیاریه از کدومشه. ال کل تبدین از سفات اختیاری و رقال اختیاری حساب میشه منتها اقاب مال کدومشه خب مال کدومشه. اینها محل بحثه بله؟

اگه از افعال باشه قاعده حسنق و پغلی میگیده تقبیرش میکنه شرعن حرام میشه ولی اگه از،, از صفات نفسانیه اختیاری اختیاریه باشه قاعده حسنق و پغلیه اختصاص داره به افعال اختیاریه یه خیلی ها تصدیق کردن خیلی ها تصدیق نکردن ولی اگه ازشون سوال بشه میگن افعال اختیاریه علا کلها الاخت... اختلافیه

گاهی یا یک صفات اختیار یا فعل اختیاری خارجیه وقت مصب قاعده حسن قوه عقلی افعال یا صفات مشهور میگن افعال و حرف مشهور هم درسته یعنی مشهور که میگن مذهب قاعده حسن قوه عقلی

افعال اختیاری از همین دروسی صفات رو نمیگیره اگه صفات بگیره معارض با فعل ذوایات همیشه ولی در ضمن یک تجربی بوده دیگه خب اثر به نداریم این فعل عنوان یک صفت قبیه نفسانیه نه عنوانشه حالا بعد در نیومده مهم نیست

و که شما این فعل رو در مقام مخالفت انجام دادی این فعل متصف به ماهیت مخالفت نه اینکه متصف به ماهیت شرب خمر این شرب که اقاب نداره مخالفت داره این فعل مخالفت است یعنی مخالفت این فعل متصف به مخالفت و مخالفت اقاب داره نه شرب خم

نه همین فعل در خارج در مقام تمرد بر مولا انجام داده قنابای این فعل عنوان مخالفته به شروع خندش نداریم ببین من گفتم ما همین مشغول رو داریم میگیم که بعیدم نیست یعنی همین قول مشغول ما بعضی از موارد یه مبانی در

قبال ببانی مشهور نزدیم نه اینکه مخالف مشهور در بیاد در فتاوا و نظریات نه یه راه میان برگه برا تصدیق زودتر و در خیلی از موارد هر که مشهور می به فتحه مشهور مهمه ولی ما یه وجه خیلی بسیر ساده و سختی رو پیدا میکنیم که زود بشه حجمش کرد نه اینکه مخالف باشه مشهور میگن تجری فعل من منالفای نه اینکه صفت باشه

وقتی فعلی از افعال این فعل خارجی رو کار نداریم که آبخردن بوده یا شراب خوردن بوده این مصداق مخالفت با است. و مخالفت عذاب داره حالا روایاتشم میکونم مخالفت عذاب داره مهم انه که ما متن که مصنف میگه ما اینو هزمش نیم مصنف چی میخواد بی حالا بعد از اون که از متن مصنف خارج میشیم یه نظری بد خلافش باشه یا نباشه اون در مرحله دوم اهمیت وعشنه که چرا کرد

اشکالش برگشتش یعنی که آیا تجاوی صفتون من استفاد یا فعل من الافعال و مذهب قائده حسن و قبح عقلی افعال نستفاد شما علم رو میتونیشون بدین فعلاد حسادت رو میتونیشون بدین حسادت در زنده یک فعلیه دیگه

شما زنها رو نشون بسید این فعل مستاق زنار نمیشه اناغیز رو که نمیشه نشون داد نمیشه خود این فعل مستاق مخالفت و حرام حق و معنایی که قبلا گفتیم تجری تقدیر میشه و حتی حرام هم میشه به خاطر این در مقام مخالفت دار انجام بگیری هر فعلی در مقام مخالفت دار انجام بگیری یقینا قبیهه

به خاطر اینکه این, این رفع مسئولیت میخواد بکنه شخصی میخواد در مقام رفع کاری انجام بده یعنیم معضوع نیست از خودشون باید بپرسید قسم با گفتن اعتباریه نه اعتباریه و اقلال هر فعلی دارن انجام میدن به خاطر رسیدن به اینکه به اقراض و مقاصد و خودشون فعلی که متصل به حسن و قبیل میشه

ما ده فائلو ما یو زم مفائلو مشکوره بین فقه ها و متکدمین یعنی, یعنی افعال جوانهی اقاب ندارد او هم ندارد این مسلمه لذا مدن رو قیل بحث میکنند به رو و به قصد و به ها از افعال جوانهی میگن

استحقاق اقابی و اقابی و قرمت مترتف نمیشه نظرشون اینه و من من دوره اصابه پنشیش مورد از موارد رو ذکر کردم که عقاب بر فیل جوانهی هست ولی مشهور قبول ندن مشهور میگم فقط فیل خارجی به سادت باطنی میگن حرام نیست مگر اینکه بیرون یک فیلی دو محبت کنه مثال به سادت هم سال, به سال هم میزن

حالا مهم نیست بعد دیگه اشکال مصنف پس چیه؟ اشکال و منحیص و هم نبتجبری من صفات نفس الاختیاریه او فعل و من افعال الانسان الاختیاریه کدومشه؟ شما یکی از این دو تار انتخاب کنید در بردم یا بایده به بشید یا بایده به فعلیت بشید و المشکور الاسلام کمعترف بهی الشهید فیمایتی من کلامه

یعنی به اشتال در قبعه فعل متجربه شهیدعوت اشتال گرفته در اون کلامی کلامیه که داره شهیدعوت اشتال گرفته به این فعل متجربه نمیتونه قبیل باشه در قبعهش اشتال کرده منابرای ما عیدم داریم این نسبت به تجربی وصفی در مقام سهود این نسبت

قاعده حسن و اعتقاضات و قلعهیه و بام رو کرد حالا یا نافی خوب یا مثبت خوب هند آخرششون قاعد شد به اینکه نسبت به اصل و تجری تجربه خوب ثابته ولی فعل متجرب را به و این دو نظریه برخلاف همه جیده بود که الان تا الان گفت. تا الان گفته و مصلبان کرده بود و قاعده به استخباب زم شده

ولی الان اینجا در یکی اشکال کرد در یکی هم جزمن گفت قبیه بنابرای مخالف نظریاتش تا الان هرچی گفته بود اومده در این از تحقیق مثلا اینطوری آورده لذا نمیشه نظریه مصنف مسندف رو بشین به عدم قوه تجربی مطلمان تصریح کرده به قوهش نسبت به نسبت به فعل متجربه هم اشکال کرد یعنی دیگه دو وجهه آیا از بدونیم یا از افعال

نه، احکام تجری وصیل رو در مقام اثبات میخواد بردست کنه مثل به روایات حالا آیا در این موارد روایات مقام اثبات رو داره یعنی مقام ثانویت رو داره یا مقام سبوت رو داره کاری به اون نداره علاقالالله با این مختضای روایات اخبار رو بدونیم چیه نهم نه لوقان تجربی علالمعصیته

به خصوص القصد علال معصیت تجاری بر معصیت باشه در مقام خصوص قصد یعنی شب نیت گناه کرده نمخواد گناه انجام بده فقط نیت گناه رو داره نیت کرده دروح بگه نیت کرده دو زیبه کنه نیت کرده درش نخونه فقط نیته نیت کرده لوگان تجربی علال معصیل ده

به خصوص قصد علل معصیته فقط من دون معصیت انتخابسه اصلا قصد خود معصیت رو نداره میخوام فقط قصد کردن معصیتو خصوص بس آیا این قصد قبیه حرام یا حرام نیست بل مصادره غیر به اخبار کثیره الحق و انهاز القصد گفتن قصدش رو میبشه اشکالی نداره

پذردی شش قصد داره یکی شید درانداری می کن پذردی در خصوص مقام قصدیتش فقط قصد گناه رو داره نمیخواد قناه انجام بده قصد گناه داره یه موقع این دیرش انجام بده قصد در این موارد میگه فتبا سرباقو بهی فتبا اخبار کسیده ال اخ و انفر.

اولین و آخرین چیزی که در این دواییات به ذهن میرسه که افه یه معصیت بوده دیگه بیده اگه معصیت نبود افه معنی نداری بنابراین اینا تصدیل دارن به افه دلالت هم داره به یک این معصیت بوده بنابراین قصد به ماه و سفت و منصفات نفس متصف به حرمت شده و معصیت بوده تا اخبار و مده اینو دفتر ما میبهش فرموسر رو به یک که دفت از کسیر

و مقتضا هم نهی اونهی هست مقتضای عبشیه که معصیت بوده دیگه این اضافه کنید و مقتضا ظاله ها معصیت. هست بنابراین فعل نفس متصف به محصیت شد چرا خشور میگن حتما باید فعل جوانی باشه فعل جوانی گناه و روایات اومده بخشیده حالا روایات هم که بخشیده یه روایات معارض هم اونا نبخشیده

حالا مال او ثلم که این روایات کسیره و مقدم بر اون روایات بشه اینو گناه فرض کرده و بخشیده. حال عن الذنب. و این گونه من اخبار الاخر. العقاب علی هاذل قصد ایدن. ولی روایات دیگم هم این اونا گفتن نه مان نمیبخشه. ایباب میشه شخص. مثل بونلی حسابنده الله صلی اللہ علیه و, و سلم

میته الغافل رو من عملی. گناه این گناه هست ولی بخشیدنش هم در محبت خدا ما جوانه گناه مند. که بحث نکردن که نمیشه اصلا جوانه جوانم بشه مدارا پیدا کنید. بخشیدن.

عاصیات دیگه ولی خدا میبخشه. چه تن گناهی. دارن بخشیده شدن. یعنی فاق دینم بعدو میبخشه گناهی هست، ولی خب ما گناهی که دست گناه نکنن میگن. اگه دیگه هم بگیم نه، بخشیدن یه یعنی اصلا گناه نداره. خب این مستلزم که شاره تجویز کردن اینکه مرتکب این گث‌ها حرام بشن. خب یعنی این یقینه.

درسته. اگه گناه کبیره باشه آلا اختلافاتش از اگه از از اون کتابی که از زیر مرتضا آدرستادم اونجا نوشته اگه چیز باشه از این گناه کبیره میدیم اگه بخشیده نشه آبا بگه ولی اگه برش باشه بلو اطفاً بشه

خبه اون بس کار نداری نکنی مصنف دار اینطوری میگه روایات گفته ف، یعنی گناهه ما اینه میخوایم استفاده کنیم که قصد معصیت خودش گناهه حالا بخشیده میشه یا نمیشه اون یه مقام دوبومیه خودش گناهه گناه نبود که بخشش معنا نداره روایات که آورده مثل این یکون کافر شد من عملی مقدمه ای که میخواد اینه که عمل کافر ک

بلاشنگ. و این روایت اومده گفته نیدیتش یعنی قصدش از عملش بدتره بنابراین به طریق و اولا عقاب داره و نتیجه میگیریم از این که نیت و قصد مستلزم عقاب میشه و مورد عقاب بلاشنگ نید و عقاب شرق و من عملی و چون عملش یقینا مستوجب به عقابه

و این دوایت باید شده به اینکه از عملش بدتره بنابراین به تریخ اولا مستوجب به حقابه حالا چرا نیدیت کافر شکران من عملهی تفاصیل زیادی داره؟ یکی از تفاصیلش اینه که نیت کافر بوده که تا زنده باشه گناه کنه و حتی نیت میکنه انجام بده کارهایی که قدرت برشنه

نیت میکنه ان کارو که برای قدرت نداره اون مقداری که قدرت داره انجام میتونه که قدرت نداره ولی نیتش داره. به خاطر همین نیت کافش شرط منقله در نهو جنبی یعنی مالا یقد و علاقه نیت میکنه چیزی که قدرت بافریش نداره نیت کردن که در مقابل خدا با تمام قوا بیسته قدرتش نداره قدرتش نداره یا نیت میکنه که هزار سال

کفران رو کنه کنن و نیتش خدرتش نداره چون سب سال بیشتر رو نمی کنه پنجر سال بیشتر رو نمی بنابراین شرط رو منعمده و تفاصیل دیگه در کتاب های شرح حدیث اومده و مثل قوله اینما یخ شرناسو هم یا یوم القیامه مردم بر نیاتشون محشور میشن، این نیت ها تجسوم پیدا می در هر نیتی بوده

محضور میشه و هشت قرآن برای ثواب و عقاب لذا نیدیت نید مب به ثواب و عقاب میشه یعنی نیدیت هاست که اونجا مختصی عقاب و ثواب و این اثبات میکنه که نیدیت میتونه موضوع باشه برای عقاب و ما برده من تعلیل خلود النار نار

ربایتی در رابطه با اینکه از امام علی السلام پرسیدن چرا اهل آتش در آتش مخلدن و اهل بهش در بهش مخلدن این خلود برای چیه؟ حالا غیر از اون بباعث فلسفی که خلود فنار ماهیتش چیه؟ چون دو احتمال درش هست خلود در آتش به این معنی که همیشه آتش هست و اینا مخلد در آتش هست.

معنای دومش میشینه که تا آتش هست اینا هم با آتش هستن یه زمانی میرسه آتش بد داشته میشه اینه خلود دوتا من مباری. یک معنای که همیشه یعنی ابدی آتش هست اینا تو آتش هم یک معنای دومم هم اینه که تا آتش هست اینا هستن اگه آتش تمام بعد سه هزار سال آتش تمام میشین هم میان میدن اون حالا فلسفی و

عقلیشه. ولی ظاهر روایات اینه که آتش همیشه هست یعنی انقطاع نداره انقطاع نداره عبدا و تردید در انقطاع آتش درست نیست لذا از امام علیه السلام برزیدن که چرا اهل آتش در آتش مخدردن و اهل بهشت در بهشت امام فرموده اینا هر کدوم از این دو تای بل تصمیم این بود که

تا در دنیا هستن همون کاری رو انجام بدن که در انجام میدن یعنی اگر ست هزار اون همون پیدا میکردن اهل نار دنبال فسادشون و اهل بهش دنبال سلامشون دیدن چون نیتشونی بود تا زندان خوب باشن یا تا زندن بد باشن ما هم به خاطر نیتشون مقللشون کردیم و این برگشتش به اینه که بعضی موارد این اعمال کوچه که خیلی گذرا

خود به یک معلولاتی میشه که دیگه نارگوزی مزش مثلا یک لحظه حواظ یک راننده ده نفره به پشتن میده سوال نداره برای چی اینطوری شد اینکه یک لحظه قاخل بود چرا رو از شد خب این اثر وضعی اثر وضعی این ها اینطوریه یعنی نیت بعد اثر وضعی که انسان فقیر میشه

اصنیت خوب اینه که انسان وضع مادیش خوب میشه وضع معنیش خوب میشه نیت ها تحصیل هست من تعلیل خلود اهل نار فننا و خلود اهل جنت فننا به ازن کدل من الطاقفتین الاس ثبات علاماکان علیه من المعصیت و تا اهلو خلد دوف الدنیا عبدا شدیم.

آدم خوب میگن تا هستیم خوب باشی به زمان به خاطر نیتشون بخلد در بهشت مانیم آدم هم میگن و ما ولد ایزم من اذا ازرطق المسلمان به سیفه ما و و المقتول فننا اگر دوتا مسلمان با هم برو بشن با شمشیر شمشیر به هم دیگه چه قاتلش چه و هر دو در آتش هن.

هر دو مگر اینکه به ازن امام مصومی باشه هر دو در آتش هم. حالا از پیانبر سوال شد که اون شخصی که قاتل معلومه بایس بره جهنم این مقتول چه گناه کرده میگه مقتول نیتش بود که صاحبش رو بکشه بنابراین به نیت قتل معاخذه میشه شخص قاتل که فعل قتل منجام انجام داده معاخه میشه, میشه. شک نداره

یعنی شخص مقتول که را به خاطر این نونم نیدیت قصد داری از اقاب مترسط شده بر نیت و قصد ازلتق المسلمان به سعی فهمان فلقاتل و المقتول که و ما فلنار قیل یا رسول الله هازل القاتل این قاتله باید بره جهنم خوب قاضه فما بال المقتول مقتول مقتول بیشاره چرا به؟ مستوزی به اقاب شده

حال از اللا آ ایواری زندن در نهو ارا در قبل صافده. اونج مییت داشت این بکوشه به خاطر میگش و باور از اییزن ف اقام الا فعلید بعض مقدممات به قصد طر تو به درام تغمثل عع به دل خم شخصی که درخت سنگور میخواد بکاره برای بکارهبلکه بعدا زنگورش خم درست کنه. این غاب میشه.

قارس الخم یعنی قارس الانام برای که بعداً خم کنه ما مومنی. و ماشی لسعایت مؤمنی کسی که قاریش اینه که دوغمزنی کنه یا بده سعایت کنه پیش سر یک مؤمنی که در روایت بهش مثلث میگن به و سعایت کننده مثلث میگن و ما هو المثلث قال رسول الله صلی الله علیه و سلم

شخصی که قاتل سه نفره هم خودش هم من سعا بهی و هم من سعا الیه مسلس میگه سه نفره کشت هم, هم خودش رو هم دو نفر دیگه و ما شیل خیلی خطوصیت بندیه خیلی و بعضا میده میشه یعنی دنبار کشف و دیگران هیچ چیلی از کسی بفهمید یه جای به دردمون بخوره.

بر علیه اشتباه میکنیم امسالیم یعنی زشتری ترین منفورتری که فاصله میره انسان از قلب سلیم یکی کسی قلب سلیم نداشته باشه ابدا کارهای خوبش هم بداردیم تا صبح نماز بخون هر وقت روزه بگیر قلب سلیم نباشه چیکار به کار دیگران داریم ما اونول خطا و اشتباه داریم که خطا و اشتباه دیگران در مقابلین ه

موالی گران یکی میدونیم از خودمون صد تا میدونیم علاوه بر ثాయت کنیم و ما یه مؤمنین یعنی المصلح که قاتل بعد وایتش در وصایین هست در وصایل که ملزمون با دوم از ابواب کتاب است ان اشار الناس یوم القیامه المصلح

قیده یا رسول الله و مسدس قال الرجل یسقا بأخيه اخیه الى امانه و یکفره نفسه و اخاه و امانه سن خبر کشنگ و فهمه مادل علا عن لفظا به فعله

مثل و ما ان امیر المؤمنین علیه السلام اندر راضی به فید قومن که داخل فیه معمون و علا داخل فیه اسمان اسم رضا و اسم دو. شما بعد از هزار سال بشنوی کار بد اگه به اون کار بد راضی باشی کنه آنها رو برای شما میمیزن یا کار خوبی رو بشنوی راضی باشی ثوابان رو به شما میدن و یا ایه

و یعیدهو قولهو تالا اینلذین یهبون انتشی الفاهشه فلذین آمنو لهم عذابون امین که دوست دارن فاهشه در بین مؤمنین شیو پیدا کنه لهم عذاب امین یکی کدومشو چیه؟ نداره بگه بگه

و ماوره در این آره این ادامه اومد این رو صاف هر داده از اشتباه من خودم دادم این روسته که من دارم امونم بهتر از اونه که کنگل شد کرد و یعیده قوله تعالی اینه لذینه یه قون انتشی از پاهشت لذینه و من در اون مذاب رو ندیم اونه اگه دوست دارن حالا چرا معید آوردین رو وزش تأییدش اینه که دو تاست

یک اینکه نازل به شلوع غب شلوع پارش هست نه غب معصیت غب شلوع پارشه نه به معصیت بعضی از این گناه رو دوست دارن و دوست ندارن شلوع پیدا کنه گناه رو دوست داره و دوست نداره کسی بفهمه کسی متخلق باشه اشکال نداره غب معصیت رقیقه از غب شلوع معصیته میگه نه یه نوره علنی بشن

این خیلی بده بدایه چون قویتر تر معید آورده این یک دلیل دلیل دومینه که حب معصیت قیل از خود و حبش حقا از خودشه به خاطر گرفته بعد یک اصطلاحی در علم تفسیر هست و اون این هر کجا از آیات قرآن داره

لهم عذاب علیم این عذاب دنیاوی زودرست رو میگه نه عذاب اخوید قاعدتون من قواهد تفسیر خیلی مهمه هر آیه ای داره عذاب علیم یعنی عذاب زودرست دنیاوی جمعون مرگش کنه به بدترین مرگ کشته میشه یا به پیش میفته به مرز بدی میفته عذاب علیم مال آتش جهنم نیست.

مال عذاب سخت دنیایی زود رسته میگن عذابن اونهایی که یو حکون هم تشریع پایش رفتی لذینا منون لهم عذاب و نبید. و یکی از اشتباهاتی مقصرین عامه دارن خاطبتن اینه که تمام آیات و قرآن رو میخوان برای آخرت منمون همشون انا هده اینا هستبیل اما شاکرم و اما کبورم

بعد در ادامه داره که ان نا ارتد نان کفارینه ثلاث و اعلالن و صایدن اینو معنا کردن برای جهنم سلاسل و اعلال و صایدو معنا کردن برای جهنم ما اینه آیات ادامه ای آیات غیبی بر این کمال دنیاست اونها کافرن و کافر یعنی که اخره به خدا باشن کفران نمیمنت بعد سلامتی رو نمیدونن بعد فرصت ها رو نمیدونن

قدر زن خور رو نمیدونن قدر درخیر خور رو نمیدونن قدر هم بحث خور رو نمیدونن کفرا اون نعمت میکنه اونهایی که کفرانه نعمت میکنن به سلسله ها میافتند سلسله های زنجیری که انسان رو از این گرفتاری مربوط میکنه به اون گیر و اغلال و قل و زنجیری که دست رو به گردنش هم همیشه میبنده دستشون باز نیست چرا باز نمیان دوست ندارن ببخشند

به ح اقلال نمیدون دست باز نیست سری چ ببش یه کتاب ازش میخوای نمیده پول ازش میخوا کار میخوا میگه اون بثتن اقلال یعنی همون بسته شده دوس دوست نداره دوست نداره کسی بیشتر از خودش بفهمه بیشتر از خودش بدونه بیشتر از خودش پیشرفت کنه سلاصل و اقلال و سعید سعیدی یعنی یه آتش پروزان مثل حسادت مثل کینه در دلش

اولالعب میشه و بهتر از جهنم میسوزنه جهنم که نسیه است این اینجا نرده خیلی جایت آتش احسادت دارن ما خودمونم داریم در بین علما خیلی زیاده ولی خب بعضی از موارد احساس نمیشه یعنی آیات قرآن رو ما تفسیر نکنیم با آخره دنیا مردم مفسرین مفسیر خراب کردند کردن برای این آیات ما رو آخره هست دیگن. این مال دنیاست کسی که و

دلی که آفرین یعنی اونهای که کفرانی نعمت میکنن، کنن زن خوب رو نمی دونن قض خوب رو نمی دونن قض امنیت رو نمی دونن امنیت که هم ما داریم ما قضاشو نمی دونن سلامتی رو نمی دونن گرفتار سلسله ها قلو زنجیر ها می بعدا خودشون باید من آمدن بعدا یه تلمی از صبح تا, شب تا شب لا یزال من درسن لازه ده. درس. آخرش هم آن

حتی درس میده هتا مباحثه داره هم شغل داره انا قول قول و و سلسله است دیگه چیه؟ تا که هیچ فراغ نسبت به زن و بچش نداره اصلا فرصت خودش خودشم نداره این بدبخت یک نیم که نماز بخونه وق این اینا همش سلسله است خیال میکنه نظم اسمش ما نظم میظاریم در زندگی دنیوی حیوانی خودمون اسمش میذاریم نظم ما خیل منظمیم از ساعت چهار صبح که چه

بعد نامریزی کردیم. دو ساعت, دو, ساعت دو ساعت اونجا و دو میانیم. بعد تا چهار میخونیم. چهار پا میشیم. می باید دهنیم می میخوابیم. و بعد از نماس صبح پا میشیم. این ها همشون سلطه لرکس. همش خروزنجیره. بعد همه ی اخلاقی هم داریم. منتها روزش و به فیلیت رسیدنش زمان میمده. باید به وقتش برسه. ما, ما بتونیم این بغور رو به فیلیت حالا

علمی که همه مفصلین عمر هم رو زده یعنی شجاترین مفصل انسان که تولد پدر و انبیاس مرزومین بلاشد یعنی در معنویات در اسمتش من حتی شک ندارم این پوز همه رو زده در عقاید در فلسفه در همه چیز اومده آیات قرآن رو به روز معنا میکنه نه مال دنیا نه مال آخره

و یکی از یکی از جلباتش خودش اصلا به نظر من هنوز دنیا قابلیتی که علامه تبا تبایی رو کنه نداره خودش خیلی سهی وجودی داره نمیشه اصلاً. حالا از المیزانش گروز ولی بعضی از جلواتش در شهید متحریب گروز پیده یعنی شاکل شهید متحریب یک نوری از انوار علامه داره یا محمد تقی جعفری

این مثلا مهر اسلام بوده چیزی غیر از اسلام برایشون معنا نمیشه آیات قرآن رو به روز معنا کرده یعنی سلسله و گلگله همه رو گفت مال دنیا هست. نه مال آخرت برای چی بگیم آخرت دنیا رو مردم خرابش کنه نه همین دنیا انما یعکلونه پیبوتونه نارا یعنی همین دنیا یعنی الان اگه چشم بردخش باشه معلومش کس که مال یکیم رو داره نفره آتش لله.

آره این صفحهاتو میبینم چه دوری باقید من چهار صفحه از یک ده دفعه هم بود یادم رفت بیارم در لاکته با حسن قبع حقلی چرا؟ دست آقاینه آره کلاس مقاسم مدرس وسه آره مسجد رو شهریه بینیم و دنیا روی آورده به

که

و اون چک داره که ما ما پلیو داره که موقعی از باشه یه

تا قبل میشه با این هم رو

و ناز و پر

هم باید بریمون چون که از شد روز دو هفته ایشان یا یک هفته چون که بسید آنید این رو کنرده شما به خطرم به بباشد هر روز شما بریم برای

از روی برنامه کی واسه اون لحظه نه نه نه نه برنامه برنامه برنامه

که که دیشتی من می دونم که این شکلی نه. دادم

آموزشی برایشیم. امتحان می‌کنند. امتحان کنند. آموزشی برایشیم. آموزشی برایشیم. آموزشی برایشیم. آموزشی برایشیم. آموزشی برایشیم. آموزشی برایشیم.